فصل سوام اکنون به سومین افسانه با عنوان جوان و غریبه توجه ب سالها پیش در سرزمین ما، یعنی سرزمین انسان‌های فرهیخته فریخته و دامنده رموز زندگی، بازرگانی زندگی میکرد که تنها سمره عمرش در این دنیای فانی و این روزگار زود گذر پسری بود. بازرگان این پسر را از جان و دل دوست میداشت و هر روز و هر ساعت سلامت و سعادتش را آرزو میکرد. او بعد از سالها کار و تلاش و خونه دل خوردن و برای به آوردن لقمه اینان حلال، کوه و دشت و بیکران را پشت و سر گذاشتن بالاخره آفتاب عمرش به لب بام رسید و چراغ زندگیش کم شد این بود که اهل و را دور خود جمع کرد و به آنها گفت خب دیگر آن را که عیانه است شهاجت به بیان است دارید میبینید که پیمانه خالی شده و من دیگر باید بار سفر ببندم و از این وادی فانی بروم مرگ حق است و است که در هر خانه میخوابد اگر دوست دارید که من با فراغ بال و آسودگی خیال از پیش شما بروم خوب به حرفهایم گوش کنید و به آنچه میگویم درست و حسابی عمل کنید. همسر بازرگان گفت، هرچه در دلداری بگو تا بارد سنگین نباشد. بازرگانی پیر از روی مهر نگاهی به فرزندش انداخت و گفت، پسرم، تو شیره جان و سمره عمر من هستی. فردا که من سرم را زمین بگذارم، همه میخواهند راه و رسم و رفتار و کردار مرا در کارها و سیرت و صورت تو ببینند. پس کاری نکن که مردم با دیدن تو بر من لعن و نفرین بفرستند. پسر جوان سری تکان داد و گفت چشم آنچه را که میگویی با جان و دل انجام می حالا بگو چه کار باید بکنم که تو از دل و جان از من راضی باشی؟ پدر گفت پسرم همانطور که می دختر تو مدت عقد عقف کرده تو و چشم انتظار توست که سر و سامانی بگیری و مشغول کار و پیشه آبرومندی بشوی و او را به خانه بخت ببری بعد از رفتن من هم مغمه تو این باشد که زودتر دل به بکاری بدهی و هرچه سریتر دختر اموی خودت را به خانه بیاوری و با عزت و آبرو زندگی تازهی را شروع کنی جوان ساکت و خاموش حرفای پدر را از اول تا آخر شنید و گفت چشم پدر. آنچه را گفتی با جان و دل شنیدم و قول می دهم که با هم عمل کنم تا تو در آن دنیا هم از من راضی و خوشنود باشی. دوسه روزی گذشت و ناگهان بازرگان دل به سفر آخرت سپرد و زاد و توشه ای را که از اعمال و کردارش فراهم کرده بود برداشت و دنیا را با اهلش تنها گذاشت بعد از مرگ بازرگان پسر قول و قراری را که با او گذاشته بود خیلی زود به فراموشی سپرد و با چند تن از دوستان و رفقایش بنای ویلگردی و عیاشی گذاشت و چیزی نگذشت که در کارهای ناسواب غرق شد بعد از یک سال در ایاشی ها و ویلگردی تمام پول پدر را به باد داد و مجبور به فروش اساسیه خانه شد. مادر بیچارهش هرچه او را نصیحت می کرد به گوشش فرو نمی دفت. یک شب رفقای نابکار پسر بازرگان را که از فرط ایاشی بیوک و اراده شده بود در گوشه خرابه رها کردند و به راه خود رفتند. پسر وقتی به اوش آمد و خود را در آن حال دید از خودش و از پدرش خجالت کشید و راه خانه را در پیش گرفت مادرش گریان و نالان به فریاد او رسید و برایش غذای مختصر فراهم آورد پسر وقتی سر حال شد و یاد بی وفایی رفقایش افتاد تصمیم گرفت از آن شهر برود و به قولی که به پدرش داده بود عمل کند اما پولی نداشت مادرش هم دست خالی بود زیرا هرچه چه از داشت به پسر داده بود پسر هم آنها را صرف ولگردی و عیاشی کرده بود. در خانه هم چیز به بخوری نداشتند تا با فروش آن مبلوی به دست آورند. زیرا اساسی خانه را پسر به مرور فروخته و صرف عیاشی دوستانش کرده بود. بالاخره جوان از مادرش اجازه گرفت حسیر کوچکی را که به جای فرش از آن استفاده میکردند ببرد بفروشد و با پول آن خرجی سفرش را فراهم کند. مادر قبول کرد و پسر بعد از فروش حسیر سوار اسبی شد و راه افتاد. جوان درمانده با دلی گرفته با و چهرهای در هم سوار بر اسب از شهر بیرون رفت ولی هنوز چندان دور نشده بود که مردی او را صدا زد کجا روی پسر محمود بازرگان جوان سر برگرداند و تعجب کرد آخر چه کسی بود که نام و نشان او را میدانست دهنه اسب را کشید و برگشت یک دفعه جلوی خودش جوان ورومندی را دید که غرق در زره و سلاح بود و نقابی بر چهره داشت گفت، دارم به دنبال کار و ای به سفر می‌روم. نوابدار گفت: من سیر تا پیاز زندگی تو را می‌دانم. گرفتار شدنت پیش دوستان ناباب و نواعن، آبروریزی، فروش اساسی خانه، قسط خوردن مادرت، فروش آخرین چیزی که در خانه داشتید یعنی آن حسیر و قصد و منظورت از سفر همه و همه را می‌دانم. اما می‌خواهم تو را نجات بدهم. اگر قول بدهی که از این پس دور دوستان ناباب و ناعل را خط بکشی و سرت به کار خودت باشد و به قولی که به پدرت دادی عمل کنی نجاتت می ده. پسر بازرگان خوشحال شد و گفت قول می ده. نقابدار کیسه از خرجین بیرون آورد و گفت در این کیسه هزار دینار موجود است. آن را بگیر و با پانصد دینارش در همین شهر برای خودت کسب و کاری فراهم کن و 500 دینار بقیهش را به دختر اموی چشم انتظارت بده تا خودش را برای آمدن به خانه وقت آماده کند. یادت باشد که بدون اجازه من حق نداری دختر را به خانهت ببری. من باید بدانم که تو دیگر دنبال کارهای ناسباب نمیروی و سرت به کار و زندگی گرم شده است. جوانی گرفتار که فکر میکرد این چیزها را دارد در خواب میبیند با شادمانی فیسه پول را گرفت و گفت گل میدهم به با آنچه گفتی عمل کنم بعدم هم خواست برود که مرد نقابدار گفت وعدگاه بعدی ما همینجاست و کسی هم نباید از این موضوع بخبر شود حتی دخترم مو جوان قول داد و به تاخت از آنجا دور شد پسر در شکسته بازرگان واقعا به قولش عمل کرد صاحب حجری شد و کسب کارش رونر گرفت یک سالی به این ترتیب گذشت و او که دیگر بازرگان بنامی شده بود تصمیم گرفت دختر را به خانه بیاورد. موضوع را به مادرش گفت اما مادر پیر معتقد بود که دخترمو دیگر از او بیزار شده و به هیچ وجه حاضر نمی شود به خانه او بیاید پسر به مادر التماس کرد که با هم به خانه امو و اصرار اخت وقتی اصرار و التماس پسرامو و مادر پیر او را دید قبول کرد به خانه وقت برود اما با یک شرط و آن اینکه پسر به قولش وفا کند و درباره این کار از آن مد نوابدار اجازه بگیرد. جوان که عدش را پاک فراموش کرده بود قول داد که روز بعد به وعدگاه می رود و از نوابداری که زندگی او را نجات داده بود اجازه میگیرد. فردای آن روز پسر بازرگان به وعدگاه رفت و مدتی به انتظار ایستاد، تا سرانجام سوار نقابدار از راه رسید. وقتی به هم رسیدند، پسر بازرگان ماجرایش را تعریف کرد و از نقابدار خواست اجازه دهد که او دخترمویش را به خانه بخت بیاورد. نوابدار نقابدار گفت، باید مرا نزد دخترمویت ببری تا من از او بپرسم که از تو راضی است یا نه؟ پسر بازرگان ابتدای یک خورد، اما بعد پذیرفت که سوار نقابدار را نزد دخترمویش ببرد. وقتی به خانه امو رسیدند، پسر بازرگان از امو و زن خواست اجازه دهند که دختر بیاید دم در و با سوار نقابداری که آنجا منتظر بود کمی صحبت کند. امو و زن امو با نگرانی گفتند دختر در خانه نیست و نمیدانیم کجا رفته است. پسر بازرگان با شرمندگی دم در خانه آمد و به سوار گفت دختر نیست و کسی نمیداند او کجا رفته است. سوار نقابدار ناگهان دست بلند کرد، نقاب از چهره بر گرفت و با لبخندی گفت: نترس و نگران نباش، دخترمون اینجاست. پسر بزرگان که نزدیک بود از تعجب سکته کند، بعد از آن که به خود آمد، خوشحال و خندان به طرف دخترمویش رفت و پرسید: آن سوار نقابدار واقعا تو بودی؟ دخترمو گفت: بله. من پس از مشورت با بزرگان تصمیم گرفتم به این ترتیب فرصت دیگری در اختیار تو بگذارم تا راه سواب و صلاح را در پیش گیری. خدا را شکر که موفق شدم و تو هم توانستی غیرت خودت را با این نقشه به من و همه مردم این شهر نشان بدهی.